كتب باشترين هاوري خواندناوي كتبو قران بنيو حكمتاكاني نوسيندا كتبي چشتي مجاور نوسيني هجار مكرياني خواندناوي عميد علي قمر کردنی دلیر سلین گگرانی عزیزو خوشویست سلاو تنلی به خوشحالین لعبشی هشتا و دوی خویند نوی کتیبی چشتی مجوری هجاری مکریانی حتی نوالای ایوی برزو خوشویست فرمون گگرمن بن حجار مکریانی بر دوام لسرجرانوی بس رعت کانیجانی خوی متأبتی لوکاتی کلاخباتی شاخ و شعرش بردوام دوام بود لرادوی کردستان عرب کاری کردو. حجار دنوسه چن مالک کردیکی ترکیایی لعشراتی قشوری لدودی بن کامان بون که همویان اولادی پیر پیاک بون ایش مالی سرب خوی بو دگل آواشکا کورکانی چوار کسو پیش مرگ بون شناوردیشان کردو. کوریک لګل خوشکه کیدا لا ژوریک د ژوند لا ویخي بیگانه شوانه لو ژوره دنوس جاري وهمو چن روز هر او بیگانه وک چکا بتنیا شولمال دادمانه و دای کی کچ روجیک هاوری بو بنکهینا کچکم کچکم هن رجیکا او دمره کاک عبد الخالق جیبي پیدا کردو بردی خانی بو حکیم هینا ایوا براکانیکت له حکیمن پرسیبو وتبو حامله بوو بره حویشتو شوبتنیا لجور کمدم نوسی پیر مردوق تکه هات نجور پیراوتی کرکانم بزرگ سمت دم بورانس برا تو خوا تو خبالم مکا لپر چوار کربت فنج و هاتن دنجی خوش کنده کستن من درک اوتم کنه یالم بیان بن قایشی تفنگی یکی ام گرد بدوان راحت نقایشو کشان دستم برین دربو هرام لاهوالانی مقر کرد کسب دم ونهات هیز درپت ی نداو لدرک و کچیان به تفنگ کوشت پیرما حالات قاتلکانش حالاتن جوړکم ارزکی پر مول خوین کدیتم هاولکنم تازه پیدا بنو بدنگی تفنگ وهاتون لا شکمن برده دوری کانی دایکو کو خوشکی به شیون بردیانه و مال موت بزانه او که کخویناوی بن لسر کانی بیان شوروا سلیمان که هر د خیالات او کارسات تدايو سر, سر دوشک دا کانی دا و ول سر پلس کی کانیدانه او خری کی شوشتنی شت دی کیا سر دوشک تب دکانی کانیدکوی جاور او هله وابزانی مردو هاتو سرکانی ژوره کوم زور دی منه چې خرابې بو له زمين او همو خینه پله خوین به دیواران دیارن هر چی وتیان به تنیا لرمنو چرام لسر تختکم راکشم بل امتا خوم لید کوت کڅکم د هاته خونه و د پارا وک ظلم لیکردم مظلومم خو حالینګری چن جر به خونه را پرمو زوري کار لیکردم ک دوای وکوتم پیره گواج یک بوا قولی بور شرط رنز باری. دنگی نکرده که با بشو دگل چکی دا, دا پیکاو دجی. استا که کار نماوه لی پشیمان بونه و اوکتنین لکوتوتاو. به هاری سال 1968 بو خبری اندامه که هیمنو چند کسی اگلی و هاتونو استا لطرف ماوتن. هر خبرم دا پرسیو دستم پیرانه دگیشت. گوتیان هاتون ناو دشتو براو و سانچون. دگل دا که ما پی لګوندی وسان لماله سید خزمن پرسی وتيان چن لاوي کو سيدي کی اختیاري زور پیر شوميون منبونو چون دوري بالي لګوندی قلاتي بون ايلو خوشيه لپاش 23 سال دوري ممهمنم ديتاو بلهم سيد الراستي دکړت بوبو اختیار جاوره چنل يدو باسي درد دوري بو يكري حل ريژو شکري خوابګه کسر منګ یشتو یک څبې او ورګه بزنيک مکريو او دوه مېټرمن پیرابوار جربو حوالکاني ک حاجی شیخ او لای کلیجو خالد شیخ رحیمن دلا دالیا نبرونه قرار منده ک اگر اون رویشتن یكتر بګرینو پیکو بژین زوري نبرد ک هه من هات شیناویو لجورکم دا تخت کی دانو بوینهو هاودمی همیشې من هه من په شاعرانی کورد شاعر تر به شرطه بو خوې شعر خوې شعر کې بوخند موله سر شورشین وسيبو لا یواب باشنیا لمر ګرتو لسره رادیو خندمو زوريان پسند کردبو تنانت خوې دی و تا ته نه خندبو و نم د زانی هند شعرې چاکه که خبری هاتنی همنم به ملا مصطفی دا زوري پیخوش بو راي سپاردم که تا ممکنه خدمت وکړو د لې را بګرن جوړه کمن سر راي تنجیو تالیکی او د مشک حب شوانخو مان لحرام بو با بکومال مشک رنبازیان تیدا اکل شوانه لپاش کاریش چرا ازمبوری ما نه د کوجندوه که مشک بروناکی کم تر دی نه در بلهم خرمو رنبی مشک د ودانبو روز یک من دم نوسی خرتخرتک لنایلونکی بن میجتہاد لاموابو باران لیادہ یمنوتی کو گوچانکت او مارا بی کوجا ماری کی جنجیر دریش کوتبو سر نایلونی بن میچ به حال د ایتوانی بروا ک نایلون کلوزبو وتم کاکا او بول بولی خوم نای کجم مر ها تا خوی نایلون خلاص کردو لدیوارک دا نیومتر یک لبروجوری جیسرم لتختک چوکونی کوا هی من دل بی کجا من دلم نای کجم و تی یخوه امشو پیتو بدا وک رشک که حالت او سینی منیشوتم بابا منی شو بدا تا روش دو هم مرمان ندید جارک سری در هینا نخیر یم سیری ناکین ورده ورده سانیشکا ها تا در زیکیله مشک هستان هیجان می تاجیه جنجیر دای مشک راوکا قط مشکی بین میث نما امجر بوان ها تخور لبرچوی ام راوی مشکی دناو دیگر خوا وت حسینی قط تاقه مشکی کی بودر مانش نه یشت ورکنان من بودرشت بن تخت کرت کر دی خور دچو او خور نهو د مالکی خو ل سرم زور ل میش ساله بروم و مارک اگر ازر ندری زیان نادو ل خورا بکسونه او ماره به منی اثبات کرد به بابشیلی کی پاکی خوشویستی به پیسایی و میاو میاو پششن منگی که او شوین من بجههشت پیشمرگی فرزباوی چوبونه باسی جوره کم کرد فرزباوی تی کردومه تا جوری خوم و تم تخوا کک فرز مارای که فارس. لو رنگی تی دای اگه تلیب نی کشن فرز زرد حل گره گوتی او چیلی هر هر امر دبه چولی کب، چون پیو دگل مار لجوریگ دادا جی باسی جیانی او روژانی شیناوی هیمن لپیشکی شرف نام کم ده زور جوانی نوسی و چند جارگ لشیناوی زور پیز بمباران کراینو بسلامت درچوین چون که لمنجی نوی سالی هزار و نوشست و هجده که باسی حتب و نو نوستر کردیسان شرین پیف روشتینو روژانه هر گرمی تیارو، قرمی شیستیرو، زرمی توپانو، خرمی بومباب شویک دورو بری رادیو بومباران کرا من له جوړ یک دابوم فانوس یکم له پيش بو دموسی لا یک لریزی مهندسکان رادیو خو به جوړ دا کرد من خو سربانم له توجمی بومباوه به سردا باری بو خولکی میزينوسینم خویند کردو غوتی ما مهاجر له بومبا زورت رسم به سر سیمي خر در دا کوتم بریندار بوم بیکه به خاطر خدا فرم که تو چون له ناترسي وتم کاکا من هر لشم دیجی تیاریا وقت ساعت کدیجی آوتیاچونه مامی ما میادور کو توک کلا گرمای میشول خوی رزگار کو برای کی استانشو منشل برچن استیک دلم لرادیو حال قند راو لسر دواي خم چو موسر چابخانا رفیق چالا کل حکومت و پناه پیه نبینو کاری رادیوی دگل دکر هر خریکی شیطانی کردن بو گر ک اما بلیم که کوردی عراقی خوندوار کانی زۆر گویە بە با اخلاقی باش نادن پیاوی زۆر باشن تیدا هلدکە بەڵام ک لە ناو زوری نالبارو بارو بێ باردە طبەقە ساده و کەم کوردی عراقی لە کوردی ھاموشێنکانی تری کدیومن پێاوترو راستو بێ فیلتەرو سخیو خوراگرترن پیاو حق بڵێ زۆر لە پرای کوردی ایران نجيبترو بوفاو ئەمکترن ماوی چتر لە سورابن ماموا او جار چاپخانە من بۆ که جنگل اک بو لنزیک چو من خانوی لنزیک خانوی اکی که بو کار کرن راڈیو که کر بو بو چپخانه دروز کردو دگل که که عبدالخالق و حوالان رادیو بوینوان جیران جهگه دزگه رادیو جهگه چپخانش لکیو لیگ نزیگ درست کرا کاری من امجار بو بو دو سره. هم بو چپخانه هم بو رادیو دمنوسیو اداره بینکی چپخانشم لمل بو. مامی سر من سردی پایز حت و لام لچپخانه و لجوری که در جین. خانوکمان چوار جورو دالانه بو. درگم بو دالان کرد بو با سالونه. سوپه ل سالون دانه. هم ل سر لیدن را هم جورکان مکتب سیاسی و 26 وانیت داری سو تمنی بابنکی چپخانه و 32 وانیت بابنکی راژیو هاته بو اوان هشت سوپه دایسان هشت تا دالان سردو اشپاسخانه ان لدروا بو نیوی زستان داری ان لمن قرزده کرد اما بهارش هرزورمان ما بو زوی دوری خانوکم لخوانکی که خلکی گوندی ممی خلان بو قطیش نچین را بو بواده ده سال بسی دینار ایجار کرد و پولک من در سر بحار و لیو خو کوتین جوگه من با کشا نردم گولی گولایمن نه بلتی زور ورد بدوری جوگه دا چندم زورم داری میوالیده دا زورم میوی رز لبر درگاو لبن دار مزوان چقند بیستانی زورچک من با های مامالی بو حات بر قد سی سالی پیناچوبو بو بو بو باشتیک کترو کروشکم را هر دبو سیری بکیم همون روز تیاره من دهت نسر، زور بشو بشه و مودای ندین، بالامیری ببینو لی من ببواسته کی اسای؟ زور جرند دگل کک عبدالخالق که دهت دشون دشت و زبد من دبرد دنجی بومباران من زبد دکرد من لبک نبوم شبک هوالانم کبرای کن لکردی ایرانی گرتبو کلنا و گربو حالیان پیچابو لیندابو و تبوی راست یکی امی ساوک نردومیو دمانچه دومی. اگر مام هجار با دزیه و بکوشم دو هزار تمنم بدانی. روش یک دگل خالید دستمان دست من لجی پیک حالیانا کتا ناو پردان من بری. جی پراوستاو و سوار بوین. خالید آغا بچاو برو تیگه اندم که معموری ساوکن. گین ناو پردان و تم رای گرا. راننده نی بیست. هر رویشت دستم خسته سر دمانچکم و تم رای گره راوستا داب زینو او رویشت خالید آغا و تی چابو نه انرفاندین و هر او جاری رای نگر تایا دم کشت شوک لگلالا چوم مالی اول آغا ساواکی اک لویبو خلقاک حپسان کنه اندویست او ساواکی پیم بزانی و تم وادیار او آغای خلقی خانو قرکانا بزمانی سلیمانی واتا حیزا د امبسته وک له ایران زور خرابي باز د کړدمو دی ګوت وطن فروشه شعر من قد به كيف ما سیاسی نه هات چون که من لاموانه بو عرب او کورد برایو به هوای اوانم شعر نه انوسی بلام خلک کی دیک زوري ان حزلی اکرد نا چربون کلا کوب نو کند اعلان کن ک شعر هجارشیو با انقص د رخصت مدوا وک د انزانی خلق بچاو شعر من بلا و تعلیم نبيست نارون اوان به سیاستی خویان دکردو من ترجمانی نو دلی نگل رشایی کبو تاک عبدالخالق فرستنده که درست کرد بو بقد قطوه سیغاری که چکوالا ببزمارک لجوری مالخوی دابو همیشه شعرکانی منی اوی لای ما مسته سیاسی کن ممنوعو باسی دجمنایتی عرب و کرد و ظلم حکمتی دکرد لو راژیو چکوالاو بلاو دکردو که رسمن نیدتوانی ارادی لیا بگرن اگر گلیش یان لکاک عبدالخالق الخالق دکردی غوت رادیو خومه اگر تورم کن وقت درویش بسواری کړ د جرم بو خلکی لیدا دوام له مكتب کر دیوان شعرکان بو چاب کن جوابیان نه دامه به برزنیم غوت چاب کرد چاپ کړئ او شمله چاپخانی خومه چاپ کړ ورګراوی خیامشم کلسونی تاو کړ بو هر لوی به چاپګان له شرک د هولیر جا شکان 400 جلد ل دیوان کامیان به تالند اونده ما بو بر ندکو زورزو خلاص بو لسالی هزار و نوسته و دا بو جاری چاپم کرده و بو زیادیانه و که 1966 هزار و و شش را لیم زیاد کرده بو بلان برزانی اجازه نده بلای بکمو چون که زوری هجوم بو عرب و ایران تیده بو لسد نسخه که پتر بلاو نکره بو لم ندا نده یک دو جر عبدالرحمن قاسم لو کریم حسامی و برادرانی دی که ا چاویان به برزانی دکوتو چند روش خوشمان راد بوارد. هاوین مالو من دالم حت نبی خوالان، خیوت یکم لو لای خانوکه حل سلیمان سولیمان اصلی با بکرو، خلکی گرگولو چند سال بو پیش مرگی من بو، کاری بو اکردین. گیاوگج دوری خیوت زرد بو بو، و تم سولیمان اویلین باشین به تاو دیمنی خوشتر بی. اواره حتم و مال هره لو او له د شنانه سلیمان پنځ مارې کوشتو نه ويرم دی ربم من شوتم دهر او پنځ ماره بو اوش کوزراون اتر تازه مار نه ما وا خانی کړ موتی اوته اوته مار مارک سری لبن حسیره ودری نابو قرتم د شوشه قلم د پال کړو سرقابي شوشم بو كون لپر مارې کتر سلیمان او سری درینه سلیمان وستي لاسام کاتوه پرې پیدا کړو دستي کې کمن پیکنیم حرسی بزوتو اوجګرتی خوست ما نشو شی کی تراوه بلهم هیڅ یان لسیر و شبتر نجیانو نناو شو شکدا مردن سلیمان زور انگیوی چاکبو تایر یکه لکویستانه ناوی کودریا زور لا قلمونه میو دک زور لسرهسته همیشله نو بفراندا دجی کمتر دکویته برسیری طفنګ سلیمان یخی لوانه کوشته بو گوشتی کی زور چوری هبو شویګ لغ خودابوین تقیط طفنګات راپرین سلیمان پشیلکوی کیږي چې ګوشته بو کاهته بو زګ آشپزخانه دوه بچک کوي بوله قندیل وهنابو زور زو وک مریشک فیر بوبون د چونه دشت بولور او وارد هات نه و وتیان بیان خنقه فسو دخوین جو تکوي کی راوین له پیدا بو حاجی محیدین بازرګانی زینوی جوته قالیشی دامین نمدای روجیک سلیمان پنچ کوي نیر پیراو کردمون هموی خستبو نه جوړیا کوه کوا کیویکان سری هر دوکانین بو مردن لودوکوانه روژگ یکیان بربو دایی کهو بو من نگیره و قفصی هاوالکهان لسربان دانا خویندی حلاتوکا جوابی داو قفصاک من برد اونی زیکا که که حلاتوکا لیده خویند سربخو خوی خزان نو قفصاکی دیار بو فیری جیانی زندان بو بو بلایا و نخوش ندهد دوستان و شیدهان دنیای پرلزانست یکتیب، عزیزان و خوشویستان دیره دا حتی نکوتای بشی 82 دوی خوند نوی کتیبی چشتی مجیوری هجاری مکریانی تا بشی کتر و لشوی کتر دا پیتندگی نوا شادو بخت وربن.